بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند به اندازه مهربان نهایت باره فرمان خدا و فرا رسید پس به آن شتاب مکنید با کی مر او و برتر است از اینکه به او شریک می آورد فرشتگان را با وحی و اراده خود بر هرکی از بندگان خود که بخواهد نازل نگرداند و به آنها دستور می دهد قدم را برحذر دارید به اینکه بیگمان معبودی جز من نیست لذا از من بترسید آسمانها و زمین را به حق آفری برتر است از آنکه به او شریک قرار می دهند. انسان را از نطفه آفرید و سر انجام او سیتی زنده آشکارایی شد و چارپایان را برای شما آفریده است در آنها برای شما لباس و منفعات های دیگر است و از گوشت و شیر آنها می خورید و چون شامگاهان آنها را به استعتگاهاشان می رانید و هینی که صبحگاهان ایشان را به چرافگاهان می برید در آنها برای شما زینت است و بارهای سنگین شما را به شهر حمل می کنند که شما بدون این چارپایان به آن را سندل نیستید مگر تن دادن با, با مشقت حقا که پروردگار شما واقعا رعوف و مهربان است و از پا قاطرها و خران را آفریدیم تا بر آنها سوار شوید و تا مایه زینت شما باشد و خداوند وسایل حمل و نقل دیگری را می که شما نمی دانید و خداوند بر خود لازم گرفته است که برای راز درهنمایی می کند ولی راههای کج هم است و اگر خدا می خواست همه شما را رهیاب می زود. اوست که از آسمان آب را نازل کرد که آشامیدنی ما شما از آن است و از آن نباتات شما سیراب می شود و در آن حیوانات خود را می به وسیله آن آب برای شما غلا زیتون خورما انگور و از هر نوع میوه را می رویاند بیمان در این نشان نیست برای مردمی که فکر می کند و برای شما شب روز آفتاب و ماه را رام گردانید و نیست ستارگان با حکم او رام شدند حقا که در این نشانه است برای مردمی که می فهمند. و آنچه را برای شما در زمین با رنگ های گنا گنا فرید نیست دست آموز شما گردانید می در این نشانه است برای مردمی که پند می گیرند و اوست که بهر را دست آموز گردانید تا از آن گوشت تازه بخورید و از آن زیور بیرون آرید که آن را می پوشید و کشتی ها را می بینید که سینه دریا را می شگافند و تا با وسیله تجارت از فضل خداوند بهره اندوز شوید و تا باشد که شما سپاس شوید و در زمین کوه های محکم پا جا کرد تا ما بعدا شما را بجنباند و رودبارها و راهها را آفرید تا باشد که رحیاب شوید و نیز نشانها را آفرید و به وسیله ستارگان ایشان یعنی انسانها رحیاب می شود آیا کسی که می آفریند مانند کسی است که نمی آیا پن نمی و اگر نعمتهای خدا را حساب کنید آنها را هرگز شمار کردن نمی توانید حقا که خداوند آمرزنده و مهربان است و خداوند آنچه را پنهان می کنید و آنچه را آشکار می کنید می داند و آنانی را که با جز خدا می پرستند چیزی را نمی آفرینند بلکه خودشان آفریده می شود مردگان اند بدون زندگانی و نمی دانند که چی وقت برانگیخته می شود خداي شما خداوند یکانه است و کسانی که باخرت ایمان نمی آورند دلهایشان منکر حق است و هم ایشانند سرکش لاجرم را ایشان پنهان می دارند و آنچرا آشکارا می کنند خداوند می دانند می او سرکشان را دوست ندارد و چون به ایشان گفته شود چیست آنچه پروردگار شما نازل کرده است می افسانه های پیشیان است تا باری گناهان خود را روز قیامت به طور کاملی با دوش کشند و نیز قسمت از بار گناه کسانی را که بر اساس نادانی آنها را کرده کردهاند. آه چی بد باری گناهی که آن را به دوش می کنند. گمان کسانی که پیش از ایشان بودن نیز سیسه چیدند، پس خداوند ریشه شان را از بی خوبان برکشید سقف بر ایشان از بالای سرشان فرورید و عذاب از جایی به سراغشان آمد که هرگز احساس نمی کردند. سپس در روز خیامت خداوند ایشان رسوا می کند و می گوید کجایند شریکان من که خاطر ایشان با خدا جویان منازعه می کردید کسانی که برای شان علم داده شده می گویند بیگمان رسوایی و بدنامی امروز بر کافران است آنانی که فرشتگان و روحشان را در حالی میگیرند که بر خود ستمگار بودند پس ایشان تسلیم می‌شوند و میگویند ما عملی به انجام نمیدادیم آره بیگمان خداوند و آنچه کردید داناست پس به درهای دوزخ درائید برای همیشه در آن به سر برید و چی بد جاییست جای گاهی سرکشان و چون به پرهیزگاران گفته شود چیست آنچه چه پروردگار شما نازل کرده است می گوین خیر را. برای کسانی که در این دنیا نیکوکاری کردند خوبی می شود و بیگمان سرای آخرت از آن هم بهتر است و هر آینه آخرت سرای نیکو برای متقیان است بهشت به های جودانی که به آن داخل می شوند از زیر درختان آنها جویبارها جریان دارد در آنجا برایشان هرچی بخواهند فراهم می شود خداوند پرهیزگاران را به گونه مزد می دهد که فرشتگان روحشان را در حالی میگیرند که پاکی فرشتگان برایشان می گویند، سلام بر شما با داخل جنت شوید. به سبب آنچی می آیا کافران جز به آمدن فرشتهای یعنی در هنگام قدز روح یا فرمان پروردگار اتا روز قیامت انتظار میکشند؟ کسانی که پیش از ایشان بودن نیز چنین کردند و خدا بر ایشان ستم نکرد بلکه ایشان خود بر خیش ستم می کردند پس به ایشان جزای اعمال ناشایسته ای که انجام می دادند رسید و چیزی که به آن تمسخر می کردند آنها را فرا گرفت مشرکان گفتند اگر خداوند می خواست هیچ چیزی را به جز او پرستش نمی کردیم نه ما و نه هم پدران ما و نه بغیر از فرمان وی چیزی را حرام می دانستی. کسانی که پیش از ایشان بودن نیز چنین کردند ولی آیا بر پیامبران جز ابلاغی اشکارا چیزی دیگری هست؟ و گمان در هر امت رسولی با این فرمان فرستادیم که خدا را پرستش کنید و از بوتان بپرهیزید از ایشان کسی بود که خدا او را هدایت کرد و از ایشان کسی بود که بر وی گمراهی متحقق گردید پس در زمین سفر کنید و بنگرید که تکذیب کنندگان حق به چی سر نوشته جو چار هر تا بر هدایت ایشان هریس باشی پس بی خدا کسی را که گمراه میسازد هدایت نمی کند و ایشان را یاری دهنده نیست و شدیدترین سوگندهایشان را به خدا می خورند که کسی را که بمیراند بر خیر این وعده است وی لازم یعنی بجا کردن این وعده را بر خود لازم کرده است اما اکثر مردم نمی دانند. ایشان بر انگیختا می تا آنچه را در آن اختلاف می کنند روشن سازد و تا کافران بدانند که واقعا دروغگو بودند بگمان حکم ما برای چیزی که پیدایش آن را اراده کنیم این است که به آن می شو پس می و آنونی که برای خدا ترک دیار کردن بعد از آنکه که ایشان ستم شده است در این دنیا ایشان را جای نیکو می دهیم و موضی آخرت ایشان واقعا بزرگتر است اگر می دانستن. آنها که صبر ورزیدن و, و بر ایشان اعتماد می کنند و پیش از تو نیز جز مردانی را که به ایشان وحیه می نمودیم نفرستادیم پس اگر آگاهی ندارید از مردم با خبر ایشان را با نشانه های روشن و کتب فرستادیم و به تو نیز کتاب را نازل کردیم تا آنچه را با مردم نازل شده به ایشان بیان کنی و تا باشد که ایشان فکر کنند آیا آنانی که توتیه شومی میچینند از این ایمین شدند که خداوند ایشان را به زمین فرو برد یا به ایشان عذابی از جانب بیاید که ندانند یا ایشان را در هنگام آمد و شدشان بگیرد در حالی که آنها خداوند را از این عاجز ساختن نمی توانند که ایشان را عذاب کنند یا ایشان را بعد از حوشدار گرفتار کند پس به گمان شما مهربان و بخشای ده است آیا با چیزهایی که خدا فریده است نمی که سایه های آن از راست و چپ در حال فروتنی به خدا سجده می کند آنچه در ها و آنچه در زمین است از جانداران و فرشتگان همه آنها ها به خدا سجده می کنند و ایشان سرکشی نمی نماید. ایشان از پروردиگار خود که بر ایشان حاکم است می ترسند و به آنچه به آن عمر کرده می شوند به جا آورد. و خدا هدایت داده است که دو معدود مگیرید بیگمان او همانا خدای یگانه است پس از من و تنها از من بترسید آنچه در آسمانها و زمین است از آن اوست و دین همواره از آن اوست پس آیا از غیر خداوند می ترسید؟ و هر نعمتی که با شما عرضانی شده است از جانب خداوند است سپس چون با شما مسیبتی برسد سوی او می نالید. باز چون مصیبت را از شما برطرف ساخت در آن وقت بروهی از شما و پروردگار خود شریک می آوردند و به این ترتیب آنچه از نعمتهای خیش به ایشان دادیم ناسپاسی می کنند پس روزی چند بهرمند شوید به زودی جزای خود را در یافت. برای چیزی که نمی دانند برای بوتان قسمت از آنچه را به ایشان روزی دادیم اختصاص می دهند به خدا که از آنچه افتران می کنید مورد سؤال قرار می گیرید و برای خدا دختران قرار می دهند منظه هست او از اینکه فرزندی داشته باشد و برای خیش آنچه را میل دارند مقرر می دارند و هنگامی به یکی از آنها از تولد دختر مجده داده شود رنگ سیاه و چهرهش غذب آلود می از سبب خبر بدی که به او داده شده از اقوام خود متواری می گردد آیا آن را با قبول ننگ نگه دارد یا در خاک گورش کند؟ آه چی بد است آنچه حکم می کند برای کسانی که با آخرت ایمان نمی آورند زشت است و برای خداوند صفت های عالی و اوست صاحب قدرت مونی و با حکمت و اگر خدا و مردم را به خاطر ستمگاری ایشان مؤاخذة کند هیچ جانوری را بر زمین گذارد ولی ایشان را تا وقت معین مهلت می دهد پس وقتی که می یادشان به سر رسید نه تاخیر می کنند و نه هم ساعتی پیش می روند و آنچی که خود از آن کرایت دارند با خدا نسبت می دهند و زبانشون زبانشان این دروغ را میگوید که ایشان را سرانجام نیک است لاجرم برای ایشان آتش است و ایشان از پیش گامان دوزخت با خدا که به های پیش از نیز پیانبران را فرستادید پس شیطان اعمال زشتشان را به ایشان نیکو جلوه داد امروز نیز شیطان یا ویشان است و برای ایشان عذابی است دردناک ما قرآن را جز برای این به تو نازل نکردیم که همان چیزی را که در آن اختلاف میورزیدن بیان کنی و نیز هدایتی و مرحمتی باشد برای مؤمنان و خدا از آسمان آبی را فرستاد و با آن زمین را بعد از مرگ آن زندگی بخشید حتی که در این نشانه است برای گروهی که گوش فرامی دهند و بگمان در چارپایان نیز برای شما درس برتی از آنچه چه در شکم است از میان سرگین و خون به شما چنان شیر خالص می که برای نوشندگان خوشگوار است و از میوه های درختان خورما و تاک انگور و شراب نشعاور و روزی نیکو می گیرید بگمان در این نشانه است برای گروهی که عقل خیش را بکار می برند. و پروردگار تو به زنبور عسل الهام کرد که از کوه ساران و درختان و از چله که مردم می سازند برای خود خانه برگزین سپس از همه انواع میوهها بخور و از راههایی که پروردگارت برای تو هموار و تعیین کرده برو از شکم آنها نوشیدنی با رنهای بناگون بیرون می شود که در آن شفای است برای مردم بیگمان در این نشانه است برای طومی که فکر می کند و خداوند شما را آفری سپس شما را می میراند و بعضی شما به بعض زلیترین دوره عمر بازگشت داده می شود به گونه که بعد از آنکه که بسا چیزها را فرا گرفته بود باری دیگر چیزی را نمی داند خداوند خداوندانا و تواناست و خداوند بعضی شما را بر بعضی در روزی برتری داد پس آنانی که برایشان برتری داده شده حاضر نمی شوند روزی خود را بر بردگان خود و شوند تا ایشان مساوی گردند آیا ایشان نعمت خدا را انکار می کنند و خداوند برای شما جنس خود شما همسران آفرید و از همسران شما برای شما فرزندان و نواسگان آفرید و از چیزهای پاک به شما روزی داد آیا به باطل یعنی بتان ایمان می آورند و به نیمت خدا ناسفاس می شوند و جز خدا کسی را پرستش می که برایشان از آسمانها و زمین چیزی را روزی دادن نمی تواند و توانایی این کار را هم ندارد پس برای خدا همانندانی قرار ندید بیگمان خدا می داند و شما نمیدانید. خداوند مثل می زند بنده مملوک را که بر چیزی توانایی ندارد و کسی را که از نزد خود برای او روزی نیک دادیم پس او از آن روزی پنهان و آشکارا خرج می کند آیا این دوتن برابر بودن می توانند؟ ستالش خدای راست ولی اکثریشان نمیدانند. و خداوند مثالی زده از از دو نفر که یکی از ایشان گنگ است بر چیز قدرت ندارد و بر دوش صاحب خود باری گران است به هر جا که او را بفرستد خیری از آنجا نیاورد آیا این شخص با کسی برابر شده میتواند که عادل دستور می دهد و خودش هم برای راست قرار دارد علم غیب او همان زمین از آنی خداوند است آمدن قیامت به مانند چشم به هم زدن زود و آسان صورت می گیرد. یا از آن هم نزدیکتر بیگمان خداوند بر همه چیزها تواناست و خداوند شما را از شکم مادران شما بیرون آورد در حالی که چیزی را نمی دانستید و برای شما گوش شنوا چشمی بینا و دل آگاه داد تا باشد که سپاسگزار گذار آیا به پرندگان که در جوی آسمان رام شوینده اند یعنی با پرواز می آیند نظر نیفکندن ایشان را در آنجا نگه نمی دارد مگر خدا بیگمان در این نشانه است برای روحی مؤمنان و خداوند از خانه های شما برای شما محل آرامش ساخت و از پوست حیوانات نیز برای شما خانه ها ساخت که در هنگام سفر خیش و در هنگام قامت خیش آن خانه ها را سبک بیابید و از پشم کرک و موی آنها اساسی و سامان محیا فرمود که تا وقت معین از آن کار میگیرید و خداوند از آنچه آفرید برای شما سایه های با وجود آورد و برای شما از کوه ها پناهگاه های ساخت و برای شما پیراهنه های آفرید که در گرما نگهبان شما باشد و پیراهنه های آفرید که در جنگ نگهبان شما باشد به دینگونه نعمت های خود را بر شما تمام می کند تا باشد که فرمان بردار باشید پس اگر روی بر بر تو جز این نیست که پیام آشکارا را ابلاغ کنی نعمت خداون را می شناسند باز از آن انکار می ورزن. و اکثر ایشان ناسفاسند و از روزی که ما از هر گروهی، گواهی بر می سپس کافران اجازه سخنگفتن دادن نمی شود. و نه هم توبهشون قبول می شود. و هنگامی که ستمگاران عذاب را ببینند از ایشان عذاب تخفیف نمی و نه هم مهلت داده می و هنگامی که مشرکان شریکان خود را بیبینند میگویند: گویند ما اینها همان شریکانی اند که ما به ایشان به جای تونی می کردیم در این حال مشرکان سخنشان را به رویشان زدن می گویند بگمان شما دروگو هستید در آن روز همه خود را با خداون تسلیم می کنند و آنچه را افترامی کردند از آنها گم می یعنی آنها را در خلا می بذارد که کافر شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند بر ایشان عذابی را بر بالای عذابی دیگری می افزایید بسبب اینکه که فساد می کردند و روزی که ما در هر امتی از میان خودشان دواهی برانگیزید و تو را بر اینها گواه بیاورید و بر تو کتاب را نازل کردیم که هر چیز را توضیح میکند و هدایت رحمت و نیز مجده است برای مسلمانم بیگمان خداوند عادل نیکوکاری و بخشش به بخش شاوندان امر کرده و از فعشا کار ناپسندیده و ظلم نهی میکند شما را پند دهد تا باشد پند پذیر شوید. پیمان خدا را چون متعهد می شهید ایفا کنید و سوگند های را بعد از تحکیل آنها مشکنید در حالی که واقعا خدا را به سوگند خود زامن کردانیده حقا که خداوند آنچه را شما انجام می دهید می داند و مانند زن مباشید ما که رشته خود را بعد از تابیدن آن می و و میتابید. و به این ترتیب سوگندهای خود را در میان خیش بهانه ای برای ها قرار دهید به اینکه گروهی از گروهی دیگر سخت جستند حقیقت این است که خداوند شما را به این چیزها میآزماید و تا برای شما در روز قیامت چیزهایی را که در مورد آن اختلاف داشتید روشن سازد و اگر خدا خاص شما را امتی واحدی می ولیکن هر کی را بخواهد گمراه میکند و هر کی را بخواهد رهیاب میگرداند و البته در برابر اعمال خود مورد سؤال قرار داده می شوید خود را بهانه برای فریکاری میان خیش مگردانید تا مبادا قدمی بعد از شدن آن بلغزد و به سبب اینکه مردم را از راه خدا بازداشته داشته اید حقوقت آن را بچشید و به شما عذاب دردناک می شود. و در برابر عهد خدا بهای ناچیز نستانید بگمان آن چه نزد خداست برای شما بهتر است اگر بدانید آنچه نزد شماست تمام یعنی فانی می شود و آنچه چه نزد خداست باکی می ماند و بگمان مزد سعب کنندگان را به نیکوترین اعمالشان پاداش می دهید هر کسی که کار نیکرد مرد باشد یا زن، و در صورت که مسلمان باشد پس بیگمان او را زندگی پاکیزه مویسر می گردانی و ایشان را به نیکوترین اعمالشان پداش می‌دهیم. و چون قرآن می از شیطان رانده شده به خدا پناه ببر بیگمان بر آنانی که ایمان آوردند و بر خدا توکل می ورزند شیطان سلطه ندارد سلطه او بر است که او را حامی خود قرار می دهند و نیز آنانی که با خدا شک می آورند و چون آیه را به آیه دیگر وز کنیم و خدا بر چیزی که نازل می کند بهتر می داند می گویند تو مفتوی هستی بلکه اکثر ایشان نمی داند بگو روح القدس این آیات را از جانب پروردگار تو به حق نازل کرده است تا مؤمنان را ثابت قدم گرداند و هدایت و مجده باشد برای مسلمانان و بگمان ما می دانیم که کافران می کسی که با او این آیات را میآموزد بشر است زبان کسی که با او اشاره می کنند اجنیست و این قرآن به زبان عربی آشکار است بگمان آنانی که به آیات خدا ایمان نمیارند خدا ایشان را رهیاب نمی سازد و برای عذابی در و واکن کسانی این دروغ را برمی بندند که به آیات خدا ایمان ندارد و ایشان خود واکن دروغ رویانند هر کس که به خدا کافر شد بعد از ایمان خود خشم خدا بر ارست. مگر آنکه مجبور ساخته شد ولی دلش به ایمان استوار بود اما آنکه که بر کفر سینهاش اش شد پس خشم خدا بر آن هاست و عذاب بزرگی در انتظارشان است این عذاب از, از آن سبب است که ایشان زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح دادند و این که خدا گروه کافران را رهیاب نمی ایشانان که خدا بر دلها گوشها و چشمانشان مهر نهادن و هم ایشانن غفلت زدگانی واقعی لاجرم در آخرت هم ایشانند زیانکاران اما واقعا پروردگارت برای آنانی که بعد از تحمل مصیبت هجرت کردند سپس به جهاد پرداختند و صبر کردند حقا که پروردگار تو بعد از این در حق ایشان آمرزگار و مهربان است روزی که هر شخصی بیاید و برای خیش جدال کند، به هر شخصی جزای آنچه کرده کاملا داده می شود و به ایشان ستم نمی شود. و خدا اهل قریه را مثال زد که از آرامش کاملی بر بودند و از هر جا برایشان روزی فراوان می آمد. پس در برابر نعمت های خدا ناسپاس شدند. بنابر آن خداوان بر ایشان به سبب آنچه مرتکب می شدند. تلخکامی لباس گرسنگی و دهشت را شد. بیگمان به ایشان از میان خودشان تیامبری آمد ولی او را تکذیب کردند. پس در حالی که بسیتم گاری خیش دوام می دادند، ایشان را عذاب فرا گرفت لذا از آنچه خداوند به شما روزی گردانیده حلالوار و پاکیزه بخورید و شکر نعمت خداوند را به جا آرید اگر او را بیپرستید خداوند تنها به شما گوشت خودمرده خون و گوشت خوک را حرام گردانیده و نیز آنچه چه با نام غیر خدا زبح شده باشد چون کسی ناچار شد در صورت که ستم نورزد و از حد تجاوز نکند پس بیگمان خداوند آمرزگاری مهربان است به هر چیزی که زبان شما به دروغ و حکم آن را بیان می بی کند مگوی این حلال است و این حرام است تا بدین دین وسیله بر خدا دروغی را افتراع کنید بیگمان کسانی که بر خدا دروغی را افتراع می کنند هرگز رستگار نمی شوند از بهرمندی انداک مستفید می شوند ولی برایشان عذابی در ناکست و بر یهودیان صرف چیزهایی را که با توپیش از این بیان کردیم حرام گردانیده بودیم ما بر ایشان ستم نکردیم بلکه خودشان بر خیشتن ستم کردند. سپس تو کسانی را که به نادانی مرتکب عمال ناشایسته شدن ولی بعد از آن توبه کردن و نیکوکار شدن پروردگار تو بعد از این توبهشان آمرزگار و مهربان است بگمان ابراهیم با خودی خود یک امت بود بنده بود فرمان بردار خدا و برکنار از انحراف و از زمره مشرکان نبود سپاسگذار نعمتهای خدا خدایی که او را برگزید و برای راست وحیابش نمود در دنیا برایش نیکویی دادیم و بیگمان در آخرت از زمره نیکوکاران است سپس به تو وحیه کردیم که آین ابراهیم را پیروی کن کسی را که از انحراف برکنار بود و از مشکان نبود واقعا شنبه و های این روز بر کسانی قرار داده شد که در مورد آن اختلاف ورزیدهند بگمان پروردگار تو در میان ایشان در آنچه در آن اختلاف کردند در روز قیامت فیصله می کند مردم را به راه پروردگارت با حکمت و پند کو دعوت کن و با ایشان به طریقه ای بهترین و مطبوعترین طرق است مناصره و استدلان کن بگمان پروردگار تو کسی را که از راه او منحرف شد از همه بهتر می شناسد و نیز او راه یافتگان را از همه بهتر می شناسد و اگر مجازات می کردید پس به همان اندازهی که با شما تعادی شده مجازات کنید و اما اگر شکیبایی ورزید این کار برای شکیبایان بهتر است سبر کن و نیست سبر تو مگر به توفیق خدا و بر ایشان اندوگی مشه و از دستسه های شان مباش. هر باش که خدا وند با پرهیزگاران و نیکوکاران است